وصل چهار روم همه تندرست بودند بان گاهی شکایت داشت که تعم عجیبی در دهان دارد و در سمت چپ شکمش گاهی احساس نامطبوعی آزارش میدهد اما اسم این را نمیشد، شد ناتندرستی گذاشت این احساس نامطبوع شدت میگرفت. گرفت گیرم هنوز به درد مبدل نشده بود و فقط احساس سنگینی نامطبوع ای بود در پهلوی چپش و اغلب اسباب تنگی خلقش میشد این تنگی خلق شدید و شدیدتر میشد و شیرینی جو سبوشکاری و آبرومندی و عزتی را که در خانواده برقرار شده بود مختل میکرد. کرد بگو مگو و جدال زن و شوهر مکررتر میشد و به زودی آسودگی و خوشی از زندگی زایل شد و آنها فقط ظاهر آبرومند آن را با زحمت حفظ می کردن. باز مشاجره ها بود که مکرر میشد و باز جز جزایر کوچک و نادر آرامش که زن و شوهر می توانستند، فارق از خطر انفجار بغز در کنار هم باشند نماند. خراسکو بیافی دروفنا اکنون گیرم به ناحق می گفت که شوهرش تند خوب و بدخشم است و از آنجا که طبیعتن عادت به مبالغ داشت می گفت که از همان آغاز همین همینطور بوده است و اگر شکی و گذشت او نمی بود. نمی توانست این اخلاق سیاه شویش را بیست سال تحمل کند. حقیقت این بود که اکنون دیگر آغاز کننده ی بگو مگو همیشه ایوان ایلیچ بود. همیشه پیش از نهار شروع می کرد به ایراد گرفتن و اغلب درست وقتی که شروع به خوردن کرده بودند و سوپ در بشخابها کشیده شده بود. مثلا قور میزد که چرا لب بوشخابی پریده؟ است یا از کیفیت غذا ایراد میگیره؟ یا پرخاش می کرد که چرا پسرش آرنج روی میز گذاشته؟ یا آرایش گیسوان دخترش مطابق میلش نبود و همه تقصیرها را به گردن پلاسکوویا فیادورونا مینهاد یا فیادورونا ابتدا اعتراض میکرد و جواب درش میداد اما ایوانیلیش لیش دو سه بار سر غذا سخت از خشم دیوانه شد و پلاسکوویا فیادورونا دانست که این حال از بیماری است و با خوردن غذا در او ظاهر میشود و ناگزیر گردن مینهاد و از جواب دادن خودداری میکرد و با شتاب غذایش را میخورد و او این سکوت خود را خدمتی بزرگ می شمرد در حق شوهرش همین که مسلم دانست که شوهرش تند خوب و تیز خشم و موجب شوربختی او در زندگی است دلش برای خودش می سوخت. و هرقدر دلش بیشتر برای خود می سوخت. نفرتش از شوهرش بیشتر میشد. شد رفت رفته آرزوی مرگ او را می کرد در معصوی دیگر نمی توانست براستی مرگ او را آرزو کند زیرا اگر شوهرش می مرد نیز قطع می شد. و این تگناه بر شدت بیزاریش از او میفسود. اون خود را خاصه به آن سبب بسیار شوربخت میدانست که حتی با مرگ شوهرش امید نجات برایش نبود. از این حال خشم ناچ بود و خشم خود را پنهان می داشت و همین اجبار به پنهان داشتن خشم بر شدت آن میافزود. یک بار که سخت با مشاجره کرده بودند و ایوان ایریش بسیار به ناحق بر او تاخته بود بعد از رفع و رجوع مسئله به آورد که درست است که تند خشم است اما تند خشمیش از بیماری است و زنش گفت که اگر بیمار است باید به فکر معالجه باشد و از او خواست که نزد پزشک سرشناسی برود ایوان ایریش نزد پزشک رفت و همه چیز همان طوری بود که انتظار داشت همانطوری که همیشه پیش میآید همان انتظار همان تکلف و نخبت پزشکانه که برایش تازگی نداشت و درست همان حالتی بود که خود در دادگاه اختیار میکرد. پزشک پک و پهلویش معالجه کرد و انگشت بر آن کوفت و گوش بر آن گذاشت و همان پرسشهایی را از او کرد که میباید پاسخهایی از پیش معین و البته نالازم با آنها داده شود. با همان نخبتی که معنایش این بود که شما فقط خود را به ما واگذارید و ما هر کاری که لازم باشد میکنیم ما به خوبی و بی هیچ تردیدی میدانیم چه باید کرد راه علاج برای همه اشخاص هر کسی که باشد یکی بیش نیست همه چیز درست همان جور بود که در دادگاه همان حالتی را که اون نسبت به متهمان اختیار می کرد اینجا پزشک سرشناس نسبت به خودش داشت پزشک می گفت فلان و بهمان شما حاکی از آنند که در شکم شما فلان چیز و بهمان چیز چینی اینو شده اما اگر نتیجه چنین و چنان آزمایش فلان و بهمان را تایید نکند باید نتیجه گرفت که فلان و بیسار اگر چنین و چنان نتیجه بگیریم بلا آخر برای ایوانلیچ فقط یک مسئله اهمیت داشت و آن این بود که آیا بیماریش خطرناک است یا نه اما پزشک این پرسش نابجا را با بزرگواری ناشنیده گرفت از نظر دکتر این پرسش بیمار بسیار محمل بود و در خور بحث نبود کار او علمی بود و به سنجش احتمال آویختگی کلیه ها و نظمه مزمن و آپاندیسیت محدود میشد. برای او ابدا مسئله زندگی یا مرگ ایوان ایلیش اهمیت نداشت او فقط می در جدال میان آویختگی کلیه و آپاندیسیت داوری کند و این کاری بود که در حضور ایوان ایلیش با زبردستی بسیار از عهده آن برآمد و آپاندیسیت را پیروز اعلام کرد منتها آزمایش اضرار ممکن بود حاوی اطلاعات تازهی باشد و در آن صورت می بایست در این خصوص تجدید نظر کند اینها تمام به درستی عین همان حرفهایی بود که ایوان ایلیش خود هزار بار با همین تسلط به متهمان می زد. پزشک نیز خلاصی تشخیص خود را با همون تیزبینی و نازوکندیشی پیروزمندانه و حتی با باشادمانی از بالای عینک به متهم نگاه کنان اعلام کرد ایوانیدیچ از سخنان پزشک نتیجه گرفت که حالش وخیم است. ولی دکتر، و چه بسا دیگران نیست، کاری نداشتند به اینکه حال او وخیم است یا نه. و اگر می‌مرد نیز هیچ یک ککشان نمی‌گازید. این نتیجهگیری بر او اثری دردناک گذاشت. دلش سخت به حال خودش سوخت و کینه‌ای شدید نسبت به این پزشکی که در برابر مسئله‌ی چنین چونین خون سرد بود، در دلش بدید آمد اما چیزی نگفت و برخاست. و ویزیت دکتران روی میز گذاشت و آه کشان گفت شاید سوالهای ما بیماران از شما اغلب بیجا باشد ولی بگویید ببینم این بیماری من روی هم رفته خطرناک است یا نه؟ دکتر از بالای اینک نگاه تندی به او انداخت انگاری میخواست بگوید متهم اختار میشود که اگر از حدود سوالهایی که برایش معین شده تجاوز کند ناچار خواهم بود دستور دهم هم که از دادگاه بیرونش کنند دکتر گفت، من آن چرا که لازم و بجا بود به شما گفتم. برای اطلاعاتی بیش از آن باید منتظر نتیجه آزمایش باشیم. این را گفت و با کرنشی مرخصش کرد ایوان الیچ به کندی از مطب پزشک بیرون رفت و افسرده در سورت نشست و به خانه رفت. در طول راه مدام حرفهای پزشک را در ذهن سیر و رو می‌گردد و می‌کوشید های مغلق و مقشوش و مبهم علمی او را به زبانی ساده ترجمه کند و از آنها جوابی به پرسش ساده خود بیرون آورد و بداند که حالش زیاده خراب است یا هنوز خطرناک نیست. به نظرش رسید که ماحسن حرفهای پزشک این بوده که حالش بسیار وخیم است. در راه هر آنچه می‌دید نظرش قمنگیز می‌آمد. رشکچی ها و گذرندگان همه قصهدار و عووز بودند و بر امارت و مغازها هنگاری انگاری قبار قم نشسته بود. اما این درد گنگ که درونش را میخورد و یک لحظه آرام نمی با حرفهای های مبهم دکتر جدیتر شده و معنای دیگری پیدا کرده بود. ایوان الیچ با احساس افسردگی تازهی تمام حواس خود را بر این درد متمرکز کرده بود. به خانه آمد و همه چیز را برای زنش تعریف کرد. زنش به گفته او گوش میداد در این میان دخترش لباس پوشیده وارد شد قرار بود که به اتفاق مادرش بیرون برود اندکی با اکراه و بیصبرانه لبه صندلی نشست و به حرفهای بر پدرش گوش داد اما به زودی طاقتش تمام شد و مادرش نیز حوصله نداشت که حرفهای شوهر را تا به آخر گوش کند و گفت خوب خیلی خوشحالم حالا باید مواظب باشی که دواهایت را سر وقت بخوریم و دستورهای دکتر را به دقت اجرا كنیم نسخات را بده تا گراسیم را بفرستم دواخانه آن را بپیچد این را گفت و رفت که لباس بپوشد تا وقتی که زنش در اتاق بود ایلیا ایلیش مدام حرف زده و فرصت نکرده بود که نفسی تازه کند به طوری که وقتی تنها شد آهی عمیق کشید با خود گفت خوب حالا مگر چه شده شایدم هم بناسی حالم وخیم نباشد شروع کرد را خوردن و دستورهای دکتر را بعد از معلوم شدن نتیجه آزمایش ادرار تغییر کرد، اجرا کردم. اما همین جا بود که میان نتایج تجزیه ادرار و کارهایی که میبایست در پی آن شود ابهامی پیش آمد. به خود دکتر دسترسی نبود تا ابهام رفع شود و دستوری که او داده بود اجرا نشد. یا پزشک چیزی را فراموش کرده بود، یا حرفش نامربوط بود، یا چیزی را از او پنهان کرده بود. با وجود این، ایوان الیچ دستورهای پزشک را مو به مو اجرا کرد و همین اطاعت از دستور پزشک در آغاز برایش سرچشمه تسلاحی بود. از وقتی که ایوان ایلیچ نزد پزشک رفته بود، مهمترین اشتغالش اجرای دقیق دستورهای او در خصوص بهداشت و خوردن دواها و دقت در کیفیت تحول درد و چگونگی اعمال بدنش بود. مسئله بیماری و تندرستی مردم موضوعی بود که ایوان ایلیچ بیش از هر چیز دیگری به آن توجه داشت. هر وقت که در حضور او صحبت از بیماران یا مردگان یا شفایافتگان، خاصه آنهایی که بیماریشان به مال او شواهد داشت میشد، او سعی می کرد هیجان خود را پنهان دارد و گوش داد و از گوینده پرسوجو میکرد و گفته‌های او را با بیماری خود میسنجید. دردش نمی نمی‌افت، اما با کوشش بسیار خود را مجبور می کرد که خیال کند حالش بهتر است و تا وقتی که چیزی نبود که اسباب تنگخلوفی‌اش بشود. یا حالش را به هم بزند، موفق می شد که خود را فریب دهد. اما همین که اوقاتش از دست زنش تلخ می یا در اداره کاری مطابق میلش پیش نمی رفت، یا در بازی دستش جور نبود، فوراً بیماریش به بحران می کشید. در گذشته این ناکامی های اداری را تحمل می کرد، با امید آنکه که خطایی را که صورت گرفته است به زودی اصلاح کند و از برکت کار و مبارزه موفق شود و پیروزی به دست آورد. اما اکنون هر ناکامی کوچکی او را از پا می و ناامیدش میکرد و خود می گفت حالم داش خوب میشد. دباها داشت اثر میکرد که این مصیبت روی داد یا این دردسر لعنتی سر رسید و به خشم می آمد و به آن مصیبت یا کسانی که اسباب به دردسر شده بودند و او را از پا انداخته بودند دش میداد و حس میکرد که این خشم چطور ریشه جانش را اما نمی خودداری کند. به نظر می رسید که می بایست برایش مسلم باشد که این خشمگیری به ناسازگاری شرایط و اشخاص بیماریش را وخیمتر می کند و به این دلیل نمی بایست به پیشامدهای ناخوشایند اعتنایی بکند. اما استدلالش درست وارونه بود. می گفت که احتیاج به آرامش دارد و به هرانچه آرامشش را به هم میزد توجه می کرد و این علتها ولو بسیار کوچک به خشمش میآورد. مطالعه کتاب های پزشکی و رفتن نزد پزشکان نیز حالش را وخیمتر می‌کرد. این بدتر شدن حالش به قدری یک نواخت بود که می توانست با مقایسه امروز و دیروزش خود را فریب دهد. زیرا تفاوت ناچیز بود. اما هر بار که نزد پزشک می‌رفت، به نظرش می‌رسید که حالش بدتر شده است. با این همه پیوسته نزد پزشک می‌رفت. رفت. ماه نزد پزشک معروف دیگری رفت. این پزشک معروف نیز تقریبا همان حرفهای پزشک معروف اولی را می‌زد اما سؤال‌هایش را به صورت دیگری مطرح می‌کرد دیدار با این پزشک بر تردید و وحشت ایوان ایلیچ بسیار افسود. پزشک بسیار حاضقی که دوست یکی از دوستانش بود بیماری او را چیز دیگری تشخیص داد وگرچه گرچه وعده می‌داد که درد او را درمان کند با سؤال‌ها و فرض‌هایی که می‌کرد بر پریشانی و تردید او افسود تشخیص پزشک دیگری که با روش همه تبابت می کرد باز با دیگران تفاوت داشت دوایی داد که ایوان ایلیچ پنهان از دیگران تا یک هفته خورد. اما چون بهبودی حاصل نکرد اعتقادش هم به معالجات گذشته و هم به این یکی از میان رفت و بیش از پیش افزرده شد یک روز بانوی از آشنایان صحبت از تمنای شفا از شمایل مقدس کرد و گفت که بسیار موثر است ایوان ایلیچ دید که با توجه بسیار و او گوش سپرده است و باور ماور می کند که واقعیتی است و به راستی صورت گرفته است این حال او را به وحشت انداخت و خود گفت راستی عقل من تا این حد زایل شده است این حرفها همه مهملات است نباید به او هم تصدیم شد باید یک پزشک را انتخاب کنم و هرچه او گفت به دقت انجام دهم. همین کار را خواهم کرد دیگر جای تردید نیست. دیگر به هیچ چیز فکر نمی کنم و تا دابستان دستورات را مو به مو اجرا می کنم. آن وقت خواهیم دید. فعلا تردید کافی است. گفتان این حرف آسان بود. اما اجرای آن بحث دیگری بود. درد پهلو مدام از زابش می داد و مثل این بود که شدت می گرفت و پیوسته می شد. غیرعادی غیر عادی دهانش عجیب تر می شد و احساس می کرد که دهانش بدبو شده است. هایش کم میشد و نیروهایش سستی میگرفت دیگر نمی توانست خود را فریب دهد تغییر حالی وحشتناک و تازه و مهم به اهمیتی که تا آن وقت در زندگی سابقه نداشته بود در او صورت میگرفت و تنها او بود که از این تحول خبر داشت و هیچکی از اطرافیانش آن را نمیفهمیدند یا نمیخواستند بفهمند و خیال میکردند که همه چیز مثل گذشته در جریان است این وضع بیش از همه چیزو را عذاب میداد میدید که احل خانه خاص زن و دخترش که در تب دید و بازدید و زیافتها گرفتارن هیچ نمیفهمند و در خشمند از اینکه او با افسردگی و انتظارهای بسیار خود از آنها زندگیشان را ترخ می کند. انگاری گناه از او بود که بیمار شده بود. میدید که بار خاطر و مانعی در راه آنهاست. گرچه می کوشیدن که این حال را پنهان دارد. میدید که زنش در قبال بیماری او روی خاص پیش گرفته است و هرچه او میگوید و میکند دست از این رفتار بر برنمیدارد این رویه عبارت از آن بود که به آشنایان میگفت میدانید ایوان ایریچ نمیتواند مثل همه دستورهای پزشک را به دقت اجرا کند. امروز اش را میخورد و آنچه را باید رعایت می کند و سر وقت بهرختخواب میرود اما فردا اگر من مراقبش نباشم فراموش می کند و جلوی شکمش را نمیگیرد و ماهی ازون برون که پزشک قدمقا کرده میخورد و تا ساعت یک بعد از نیمه شب سر میز و غمار می ایوان ایلیچ با قز می گفتکیی چنین کاری کردم؟ فقط یک بار خانه پیوتر ایوانوویچ زن گفت: پس دیشب چه؟ با شبک. ایوان ایلیچ گفت چه فرقی می کند؟ نمیکردم از درد خوابم نمیپرد زن گفت؟ خب دیگر هر بار دلیلی میآوری ولی خب با این وضع هیچ وقت خوب نخواهی شد و ما را عذاب می‌دهید برخورد پراسکوپ یا با بیماری شوهرش چنان که آشکارا به همه و به خود او نیز میگفت این بود که داستان این بیماری در دل او ریشه دارد و این ماجرا تمام بهانه‌ای است که شوهرش برای آزار او اختراع کرده است ایوان ایلیچ حس می کرد که زنش قصدی ندارد و این حرفها ناخواسته بر زبانش می روید. اما بار خاطرش سبک نمی شد. ایوان ایلیچ در دادگاه نیز میدید یا خیال می کرد می بیند که دیگران هم با او برخورد عجیبی دارند. گاه به نظرش می که توری تماشایش می کنند که انگاری به زودی باید جایش را خالی کند. گاه دوستانش سر به سرش می و بیماریش را خیالی مهم می شمردند. چنان که گفتی این چیز وحشتآور و شوم و ناشنیدهای که در درون اولانه کرده است و شیره جانش را میمککرد و معلوم نیست او را به قهر به کجا میکشاند خوشایندترین موضوع برای شوخی است بویژه شوارز که با شوختبعی و والامنشی و شور زندگیش یاد ده سال پیش خود او را برایش زنده میکرد به خشمش میآورد دوستان میامدند و مینشستند و بسات بازی گسترده میشد یک بسه برق نو بازی میکردند و آن را اندکی خم می تا ورقها از هم جدا شود و ورق می دادن. ایوان ایلیچ خالهای خشت جمع می کرد تا جایی که هفت ورق خشت در دستش فراهم میشد. شد. شرکش می گفت سانزاتو. تو و دو ورق خشت رو می کرد. دیگر چه می خواست؟ باید خوشحال باشد و در دل به آید. برد از این بهتر؟ یک شلم بی نسیر. اما ایوان ایلیچ به یاد آن درد مکند و با آن تعم بد دهان خود میافتاد. و به نظرش سخت نابجا میآمد که با چنین دردی از یک شلم خوشحال شود. نگاهی به میخایل میخایلویچ شریک بازیش می انداخت که با دست خون رنگ و رک روی میز میزد و از راه ادب از گرفتن ورق پیش از او خودداری میکرد و با مربانی و توازو ورقها رو اول پیش ایوان ایلیش تا او به خود زحمت خم شدن و دست راز کردن ندهد. ایوان ایلیش با خود میگفت یعنی yani, چ خیال میکند که آنقدر مفلوک شدم که نمیتوانم دستم را دراز کنم؟ و حساب آتوها از دستش بیرون میرفت و تا مانده به شلم کپه میکرد و موجب باختن خود و شرکش میشد و از همه بدتر این که میدید که میخائیل میخائیلوویچ چقدر از این بابت ناراحت شده است اما او خود در کمال خونسردی ابدا در بند باخت نیست و فکر کردن به اینکه چرا در بند نیست بسیار تلخ بود همه می که ادامه بازی برای او دشوار است و می اگر شما خواستید بازی را قطع می کنیم. شما استراحت کنید. استراحت؟ نه. او ابدا خسته نبود. بازی را تا به آخر ادامه میداد سیمای همه عبوس بود و لب از لب بر نمی ایوان ایلیش احساس می کرد که موجب گرفتگی آنها خود اوست. اما نمی توانست به نشاتشان آورد. شام می خوردند و مهمانان می رفتند. و ایوانی تنها میماند و خوب میدانست که زندگی برایش تلخ است و زندگی دیگران را هم تلخ میکند و زهری که زندگیش را تباه میسازد از میان رفتنی نیست و به عکس بیشتر و بیشتر در جانش جا خوش میکرد. با این آگاهی و نیز با درد جسمانی و با وحشت چیره شده بر دل میبایست به رخت خواب رود و اغلب نیمی از شب را بیدار میماند. می میبایست برخیزد و باز لباس بپوشد و به دادگاه برود و حرف بزند و بنویسد و اگر هم نرود ناچار بایست در خانه بماند و طی بیست و چهار ساعتی که گذراندن هر یک از آنها عذابی بود این زندگی را بر لب گودال گور به تنهایی تحمل کند بی هیچ همنفسی کحال او را بفهمد و خارج باشد